باغ پس معجر مجر آبر خسته را و آستین سبز بوسه یمی بر پروردگی باد گردی بو دیگر است درخت تنابر امسال چه می بخواهد داد تا پرندگان را به قفس نیاواز نماند سلام من آرشم و اینجا رادیو دیو هجده بنفش تابستونی گرم داغ قرمز هندونه. جالبه ها. هندونه هم نماد پاییزه هم نماد تابستون. شما میده به این انتاب پذیری دیده بودیم. تازه هندونه پتانسیل اینم داره که تو بهار و زمستون سرکلش بیده شد. کاش همه به اندازه هندونه منطقه. تابستون همونقدر خوب و عالیه که اه... نمیدونم با چی مقایسهش کنم الان هرچی بگم یکی پیدا میشه که میگه چیز که تا مثال زدی اصلا هم خوب نیست لطفا با تابستون ها. از این مقایستش نه برای همین فقط میتونم بگم که تابستون همونقدر خوبه که تابستون باشه اینجا رادیو هجدهه بنفشه جایی که بنفشه هجدهه و از غذا رادیو هم هست و شما به اپیزود 6 از فصل دوم همون گوش این اپیزود تقدیم میشه به تموم تابستونهی که با وجود همه گرما و استرس کارنامه دادانه و ترس از شروع دوباره مدرسه ها البت کاردم دو همه سعی خودشو کرد تا به ما خوش بسن برمو به دوالا وادل من وادل من غاز کنی بر تن من شاد شود دشمن من وانگه حزم خسته شود یا دل تو یا دل من واوله و شی دا من بی سر و بی فادل من وقت سحر ها دل من رفت به هر جا من مرده و زنده دل من گريه و خنده دل من خواجه و بنده دل من افتاد چو دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پر خون من ساکن و دون لمن فوق سرای یاد دل من سوخته و تو در طلب گه هر تو آمد و مخیم زده بر لب دریا دل من ای خود مجنون دل من خانه قر خون دل من ساکن گرد دل من فوق سرای یاد دل من سوخته و تو در طلب گه هر تو آمد و مخیم زده بر لب دریا دل من برعکس اون پایزه که هر سال میاد و قرار از شد ترژی دین بشه آخرین فصل سا تا بسون اساسا جایی برای بر بودن باقی نزاشت حالا بیای ما خودمونو بکشیم که یه خاطره بد توش در بیاریم. اصلا مگه خاطرات از مد میفتن اصلا مگه خاطراتونم از ما بدشون فراموش میشن نمیشن دیگه منفی بافترین آدمام نمیتونم ب کتابستتون بده البته الان میشه کلی بدی از توش در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 من خودم یه دختره رو میشناستم که کل تابستون تو خونه بود. جایی که اون زندگی میکرد کسی اعتقادی به سفر و تفریح نداشت. اصلا پول خرج کردن برای اینجور جور چیزا تو قاموس اونا مصابی بود به جای کردن پولای بی زبون. بادیه ماجرا این بود که این دختر اصلا نظرش به نظر بقیه نزدیک نبود. همین دختر که تابستونش رو با تلویزیون چارده اینچی پارس و بعداً با یه دکتر ویدیو و یه مش کتابو شدن تو خونه گذرونده، میگفت یه تابستون دوسته. مستاق و مثال بسته یا بازم بگه مثلون که میشد را میافتدیم با شهین و سودی می رفتیم باغ ننجان باغ ننجان از شهر ما سه ساعت راه بود، اطراف شیراز. بوی نارننج این برنامه ها که الان آدما براش ساعت ها می نویسن و باهاش پوز میذاند از همون زمان ها هم بود. میتونستی بشینی زیر سایه ساختمون و ساعت ها راجع به شربگی. فکرکنم تنها موضوعی که از همون قدیم از زمان مولانا و حافظ و صعدی تا زمان حال پیوسته براش شعر گفتن،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 از همون اول هم من با اون دوتا فرق داشتم اونا عشق خانم دکتر شدن بودن و من سرم توی شعر ادبیات. اونا آهنگای خارجی گوش میدادن. من مونده بودم تو صدای قمر بیافه با هم فرق داشت ولی خب اون زمان همه دخترها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 من با پدرم حرف نمیزدم سالها گذشت خواستگارا رو یکی یکی رد کردم شان من هنوز عاشق علی بودم از تمام مردم بیزار از پسری که من عاشق خودش کرد بعد منو ول کرد از پدری که اونطور احساساتم رو اون اون باغ دفت کرد خواهرامو فرستادم دانشگاه خونه شوهر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 آره دیگه توسش نداشتم. امروز روز اول تابستون بود. برای بابام چای بردم. گفتم که ناراحت نباشه. گفتم که ناراحت مریضیش نباشه. گفتم تا آخرش کنارش میمونم نمیذارم درد بکشه. یهو بابام شروع کرد به از اسگارت توی کشوی کمد دیواری و یک کیسه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 حد از اون همه سال گفت ببخشمش بابا ماشق مادر علی بوده قرار ازدواج هم داشتم ولی خب پدر علی اومده و با کلی پول مادر علی رو خریده و بوده در واقع پدر من رو دزدیده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 با همون درختی که سجاد از آن بالا می رفت و برایمان میوه نیوه میانداخت خودم را دار خواهم زد. سجادی که از سر حسادت ما را داد. او خود حالا ازدواج کرده. می دانه جان، ای هم ندارد که بدانی. امروز زیر همان ساختمان گلی جایی که دو سال پیش دل مرا آنجا دفم کردند،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 زمستانی بودم که با پرواز تو یکباره کل جهان برایم تابستان شد حال من تابستانی هستم که اگر تو نباشی در تو خواهم سوخت علی تابستان هفتاد برای هفت برایقوممر دوزم دل چنگیم از من هم انا بی زاریم در طاقت خوابوشی نطوب سخن پریشانی او بوره پریشانیز وسوی جواب گریزم هنگامه هی روز و که بسواریم همه بیزاریم نه تا غط خاموشی نه تا به سخنداریم آهار سوی چبا گریزیم هنگام یه حیرانیز خود را به که بس باریم. من دور تو را 봤م تو راه مرا 봤م امید راهی نیست، وقتی همه دیوان. من دور تو را 봤م تو راه مرا 봤م امید راهی نیستی وقتی همادی و تابستون قدیمی ها, ها انگار تابستون تر بود باشم فکر میکردم که چرا آدم عاشق نوستالژی و بچگیاشونه. اصلا مگه چی داره که الان نداره؟ آره، قاعدتاً الان عباس‌آقا و بقالیش نیست که آدم مو اجازه یه بار داشته باشه ازش پرسی بخره و بره تو لیبانای آلاسکا و بذاره تو یختون و هر دردقه دقیقه بار بهشون سر بزنه و دل تو دلش نباشه باشه که کی یخت می‌زنن. الان دیگه اون تیترج برنامه کودک شبکه دو که ساعت سه بعد از شروع میشد نیست. الان خیلی چیزا نیست. ولی هنوزم تابستون هست.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 دیگه لذتی از گیلاس و آلبالو شفتالو نمیبرن نه اینکه دیگه دریا و گل و بلبل و آلبالو گیلاسی نباشه نخیر هست ولی آدم بزرگا یادشون به که اینا هستن ولی اصلا کارکردشون چی تابستونم میشه کم کم مثل باقیه فسنا ولی کم نشده چون اصل تابستون مال گذشته های هر کسی شاید برای همینه که هیچکس یادش نمیاد تابستون فصل عاشق شدن بود. نه نپایسه حالم خوب است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 او هم خم شد بر آب و گفت گیسوان مرا مثل ریرا ببا ریرا صدا می امشب از پشت کاش که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم میکشاند. گویا یا کسیست که اما صدای آدمی نیست با نظم هوش رو بالی من آوازهای های آدمیان را شنیده ام در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر آواز حاله آدمیان را یک سر من دارم از بر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 اما خاندن نمی تواند ریرا را هوای آن دارد تا که بخاند در این شب سیاه او نیست با خودش او رفته با صدایش اما خواندن نمیتواند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 از تابستون سخت برنامه ساخته از تابستون سخت گفتن و نوشتن اصلا آدم نمیدونه از چیش بگه تابستون مثل کارتون های میازذا ک اصلا شخصیت های بدش، هیوله ها و جادوگرای پنج سرش هم خوبن تابستون مثل مراده. آقا مراد توی آسهشگاه روانی آقا مراد مثل تابستونه تابستون هم مثل آقا مراد میدونین چرا؟ چون همه بهش بد کرده آقا مراد بین کنه و فراموش کردن دو انتخاب کرد اون همه چی و فراموش کرد حالا هر دو ثانیه یهبار بار بهتون سلام میکنه یه لبخند گرم بهتون میزنه که مبادا قمگین باشد. مثلا خاستیم غمگین نباشیم. ای بابا، غمگین بودن شاید شکل دیگه از شادی باشه. شاید یه شکل از شادی که نمیذاره شادی اصن بپاشه پاشه. مثل اون یکی دوتا تا آلیاج دیگه ای که اسمشونم یادم نیست و نمیذارن که طلا آبکی و, و شل باشه. تا به مثل اون یکی دوتا تا آلیاجه. شادی آفرینه ولی شاید شاد نباشه. مثل کسی که پاس گلو میده تو فوتبال. شاید گل نزنه ولی به نظر من همونقدر مهم و مهمو و باهاش. اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما به اپیزود ششم از فصل دوم گوش منگوش دارید. این اپیزود تقدیم میشه به هجده بودن‌های اولین ماه از سگانه فصل گرم تابست این اپیزود تقدیم میشه به بی سرانجامی های تیر مبارز سبوری های مرداد محربون و عشقه های شهری شاد و در نهایت این اپیزود تو هجده تیر 1195 و سه روز بعد از فوت عباس کیارستنی تقدیم میشه بهش و به احترامش کلا از سر برمیداره ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی دیفانم نندی شدان کندر دلندی امروز هم این من یک بارگی بیزار شد غرت که ترساند مرا بنداش من نادیدم اینم یادمون باشه که همه خوب میگن کم کم راستی که مثل امیر تتلو کنسرت صد هزار نفری میره تو آزادی یادمون میره کیا رو داشتی کیا برای دیدم چه شوره میبره یادمون باشه تا هستیم تا هستن قدر هم دیگه رو بدونیم با هم خوب باشیم برای هم ارزش قابل باشیم برای افکار هم برای آزادی های هم برای دیدگاه هم برای بودن هم و به هم محبت کنیم من از برای مسلحت در حبز دنیا مانده حبس از کجا؟ من از کجا؟ مالکه را دیدم؟ تمام من از برای مسله در حبز دنیا مانده هم حبس از کجا من از کجا مالکه را دزدید به دو مست م سر من پسته بیزار سر خوشم خندان لبی like من از آن کم دیدی من ست صفت گردیدم در زخمه و زاری مکن روی بیماری مکن سجانه شگرین دادم تا این بلا بخریدم پیش طبیبش سر بنه نه یعنی مرا دریاب ده زیرا در این دام نظر من زهرها نشیده هم من از براهای مسلحت در حبس دنیا آمدهم هم حفظ از کجا من از کجا مالکه را دزدیده هم. مم سر خوشه من pastتی سال سر خوشم د عاشق خان من بی دهان